من ضبط چه چون تقریق تر ضبط میشه بعد توضیحی داشت میگم این کار باعث میشه که میگرم سریع سریعتر پیش بریم توی این کار من اون حرفایی که لازم بود زدم از لعاظ شباهت با کلیل و دمنه و اینا و یه حرفای مختصر دیگه ای هست که اونا هم بعد از داستان فاهم زد اگر،, اگر داستان تا میشه اگر هم نشد اون وقت بعد ما اینو به حال ضبط میکنیم تا گفتار اندر آمدن کرسیوز از پیش افراسیاب به نزدیک سیاوخش بیت 1934 برا راست کرسیوز دامساز دلی پرز کینه، سری پرز تو نزدیک شهر سیاوش رسید زلش کرد زبان آوری برگزید تو این دنجه یلش بدو گفت رو با سیاه بگوی که ای باگ هر هرگ نام چون به جان و سر شاه توران سپا به جان و سر و تاج کابونس شاه که از بحر من بر نخیزی زگا نه منایی من پذیره برا میگه از تخت وصیم همی هم جلو پام من بلند نشی استقبالم منو نکنی بس هم به جان افراسی و قسم به جان کابوس و اینا که این کار نکنید که تا زن پزونی به فرهنگ و بخت به فرونجاد و به تاج و به تخت که هر را بست باید میان توهی کردن آن جایگاه کیان گشن تو بالاتر از این که بیار فرستاده نزد سیاوش رسید زمین را ببوسید کورا بدید چو پیغام کرسی و زورا گفت سیاوش قمی گشت اندر دلش یک گواهی میداد. می بنشست بیدار دیر به دل گفت رازیست این را بزیر چو کرسی آمد به درگاه اوی پیاده بیامد از ایوان به کون بپرسیدش از راه و از کار و شاه ز رسم و سفاه و ز تخت و کلا پیام سپهدار توران بدار. زیابش ز زی پیغامه گشت شاد چون این داد پاسخ که از یاد اوی نتابم ز ز الماس روی من اینک کمر برمیان بستم انان با انان تو پی بستم سه روزن در این گلشن زرنگار بباشیم و از باده گیریم کار که گیتی سپنج هست. پر در درنج بعد آن را که با غمزی در سپنج چوبشنید گفته خردمند چا بپرسید بپیچید کرزی و ذکین خواف فهمیام هر چی باشه میام اگه میومد خراب میشد قضیه این اصلا گفته بود نه يا استقبال من اینا که بعد بره بگی اونجا محل سگ به من نذاشتن به من توهین کردن من خفبت دادن حالا بیاوش بیاد که نمیشه که به دل گفتریدون که با من به راه سیاهوش بیاید به نزدیک شاه بدین شیر مردی و چندین خرد گمان مرا زیر پی بسپرد سخون گفتن من شود بیفروغ شود پیش او چاره من دروغ میبینی که چاره به معنی مکش و هیلت معنی چاره معنیش، معنی بد بوده یکی چاره باید کنون ساختن دلش را به راه بد انداختن زمانی همین بود و خاموش بمان دو چشمش به روی سیاوش بمان فروروی یخ از دیدگان آب زرد به آب دو دیده همین چاره کرد یعنی هیله کرد همونجوری که گفتم شاغال اومد پیش گاو کمگین سیاوش برادید پر آب چه به سان کسی کوبه به پیچت ز به دو گفت نرم حالا این مرد یک سره بیگناهی و انسونیت و پاکی اون لجن بدو گفت نرمی برادر چه بود کمی هست کن را نشاید چنود گر از شاه توران شد از دیگ دو جام به دیده در آوردی از درد نم من اینکمی با تو آیم به راه کنم جنگ با شاه توران سپاه بدان تازه بحر چه آزاردد چرا که احتر از خیشتن داردد وگر دشمنی آمد است تدپدید که تیمار و رنجش بباید کشید من اینکه پرکار هرکار یار تو هم شد جنگ آوری مایدار تو هم بر دون که نزدیک افراسیاب ترا تیره گشت هست بر خیره آب آب کسی تیره شدن یعنی روابطش به هم خوردن با شخص دیگه بر یعنی بیهوده و بیخودی مایدار مایدار یعنی من چیزی تو برات مایه میذارم در حقیقت خوشش میکنم با تو تو جنگ آوری تو هم یعنی دنبال تو هم با ست کردیت میدم به تو یعنی تفتر میگیدم وریدون که نزدیک افراسی آب تو را تیره گشته از فرخیر آب به گفتار مرد دروغازمای کسی برتر از تو گرفته از جای همه راز این کار با من بگوی کتاب باشم از این قمان بعد که میگه که نه من واسه تو قصه میخورم واسه خودم قصه نمیخورم به دو گفت که این نام دار مرا این سخن نیست با شهریار نه از دشمنی آمدستم به رنج که از چاره دورم به مردی و گنج ز گوهر مرا در دل اندیشه خواست که یاد آمدم آن سخونهای راست نخستین ز تورن در آمد بدی که برخاست زو فره ایزدی حالا اول که تور کار درست کرد و اونجا ببردرش اینجا, اینجا میکی که تور اول کار بدو کرد و فره ایزدی از او برخواست این افراسیاب هم پسر اونه ذاتش بده از ای افراسی هست نخستیم ز تور آمد بدی که برخواست اون فره ایزدی شنیدی که با ایرج کمسخون به آغاز کینه چفکند بون قضان جایه تا و افراسی ها آتش ایران و سوران آب به یک جای حد هر... می آتش ایران و توران چه آب توجه کردیم که یک از اون وقت اوزان جایه تا با افراسی ایران آتش شده توران آب شده یعنی با هم نمی تونن به یک جای هرگز نیامیختن ایختن ز پند دور خرد سپهدار توران از آن بدتر است کنون گاو به چرمندر است گاو یعنی گاو ابلق دورنگ و گاف به چرمه یعنی پوست گافو نکندن یعنی هنوز فتنه آشکار نشد این گاف هنوز زنده است گاف در چرمه چرم پوست گافو میگه کنون گاف پیسه به چرمنده است اون پیس هم کنیدن عوض میشه بلی. پیسه یعنی دورنگ بعد. ندانی تو خوی بدش بیگمان گمان بهمان تا بیاید بدی آسمان.گه حالا بدیش رو دید نخستین از غریرت اندازه گیر اغیرس برادر افراسیاب بود افراسیاب کشتش. نخستین از غریرت اندازه گیر که بر دست او کشته شد خیر خیر. برادر هم از کال هم همز پشت پشت یعنی پدری، کالبد یعنی مادری برای اینکه تنش برادر هم از کالبد همزپشت چنان پرکرت برقرت بیگناه را بکشت بو زن پس نامبر نامور بیگناه شده استند بر دست او بر تبا مراز این سخن بیج اندوه توست که بیدار دل با بیو تندرست تو تا دستی بدین بوم بر کسی را آمد ز تو بعد به سر ببینید چه دیه خودش در رنج از بودین میگه تو تا اومدی حسود آدم چه کنه حسود از خودش رنجش از خودش. تو تا آمدستی به دین بوم و بر کسی را نیامد ز تو بد به سر همه مردمی جستی و راستی جهان را به دانش بیا راستی کنون خیره آهرمن دلگسل برا از تو کرده است پرداخ دل یهریمن دیپ امروز او رو از تو داختر کرده یعنی دلتنگ کرده از تو دلی دارد از تو پر از درد و چین. ندانم چه خواهد جهان آفدیم تو دانی که من دوستار تو هم بله خیلی تو دانی که من دوستار تو هم بر نیک و بد ویژه یار تو هم نباید که فردا گمانی بری که من بودم آگاه از این داوری نباید یعنی مواده میکنم میکن برای که مواده فردا فکر کنی که من خبر داشتم چرا به تو نگفتن. بله دقیقا سیاه باش بودو گفت من دیش از این که یار از با ما با من جهان آفرین سفه جزین کرد ما را امید که بر من شب آرد به روز سپید گرازار بودیش در دل من سرم بر نیفراختی دی زنجمن میگه اگه از من دلتنگ بود که این همه به من محبت نمیکرد ندادی به من کشور و تاج و گاه بر و بوم و فرزند و گنج و سپاه کنون با تو آیم به درگاه اوی درختان کنم تیر درخشان کنم تیرگون تی ماه او میگه میام سو تفاهم رفت میکنم هر آنجا که روشن شود راستی فروغ دروغ آورد کاستی نمایم دلم را به افراسیاب درخشانتر از برس په تو دل را به شادمانه مدار روان را به بد در گمانه مدار کسی کودم دم ها بسپرد زرای جهان آفرین نگذره او باز میگه که و اگر میرسید به افراسی هم هم میشد ولی نمیذار اینا برسن دوباره باز این یه چند وقتی بالا سر وقتی میگه صرفت جزین کرد ما را امید که بر من شب آرد به روز سفید فیت دو، مثل دو شب کردن روز یعنی روزو سیاه کردن یعنی بد کردن ولی میگه جز این به ما امید کرد سف... اون چه افراسی ها گفت این نبود که روز ما رو تبدیل شد روز ما رو سیاه نکرد امید, امید به م... ما داد گفت که اونطوری که گفت این بود که روز ما رو سیاه نکنه بدو گفت کرسیوز ای مهربان بدو گفت کرسیوز ای مهربان تو او را به دانسان که دیدیم اداما این و دیگر به جایی که گردان سپر شود تند و چین اندر آراد چهر خردند را کرد باید فسون که از چنبر او سر برون بدین دانش و این دل هوشمند بدین بالا و رای بلند ندانی همی چاره از باز نباید که بخت بد آمد فراس همه مرتو را بند و تنبل کرود به اروند چشم خرد را بدو نخستان که داماد کردت به دام به خیره شدی زم سخن سخن شادقا و دیگر که تتسقیشن دور کرد به روی بزرگان یکی سوور کرد بدان تا تو گستاخ گشتی به دو فرو ماند در جهان گفتهگوی. میگه همه اینا تمام کارای افراسیا میگه که این به بدی بوده تمام این بند و تنبل تنبل یعنی جادو برون. میگه تو بس که آقا هستی چاره رو از مهر نمی‌شناسی یعنی گری رو از محبت تشخیص نمیدی این کارا که کرده با تو همش هیله بوده همه تو را بند و تنبل فروخت به اروند چشم خرد را به دوفت من نمیدونم اروند یعنی چی نگاه کن که داماد کردت به دام خیره شدی ضمن سخن شاد کام. و دیگر که تشخیص دور کرد بعد تو را از از از دستگاه خودش دور کرد بدان تا تو گستاخ گشتی به دوی تو را هم ز اغریرت هوشمند، پوزون نیست خیشی و پیبند و بند میگه تو چی به اون نزدیکوشی از اغریرت برادر پدر و مادریش برادر کاملش که نزدیکتر نیستی میانش به خنجر بدونیم دو کرد سپه را به کردار بعد بیم کرد نهانش ببین آشکارا کنون چون این دانو ایمن مشو زود بخون میگه حالا باطنشو درست آشکار ببین و فکر نکن که یعنی ایمن ما باشه دیگه تو هم بکشه مرا هرچه اندر دلندیشه بود کرد را و از هر دریل پیشه بود همون آزمایش به روزگار، از این کینه ورد تیر شهریار همه, همه یک به یک پیش تو رانده چه چو خرشید تابنده برکنده هم دیگه من از بدیای این پادشاه میدونستم و کارهای او نه اینا شد دیگه صاف به تو گفتم به ایران پدر را بی به توران زمین جاگه ساختی چون این دل بدادی به گفتار اوی بگشتی همین گرد تیمار اوی درختی بودین برنشانده به کجا بار او زهر رو بیخش کبست کبست رو گفتم که یه میبیشتش میگن هندوانه عبو جهل و عربی هم میگن هنزل گفتم و بسیار تلقیم یعنی چیز وحشت وحشتاوریست همین گفت و این حرفا رو میزد مرد فدر سوخته همین گفت و موجگان پر از آب زن و افسون دل و لب پر از باد سر سیاهوش نگه کرد خیره به دوی دیدن هادی به فرد و جوی عشقش دران چو یاد آمدش روزگار گزند که از او بکتلت مه چرخ بلند نماند بر او بعد بسی روزگار به روز جوانی سرایت کار دلش گرد گشت بر درد و رخصاره زر بر از غم روان لب بر از باد سر حالا پیرانم که نیست پیران این وسط متاسفانه نیست اگر پیران بود از اون طرف اگر رستن بود کار اینجا این جهانه نکشی در خاک تورانم اگر پیران بود نمیگذاشت ولی پیران نیست از کنم بدو گفت هرچون همی بنگرم به بادفره بد نهندر خورم نگه هرچی نگاه کنم من لایق سزای بد نیستم باد بادفره با بادفره یعنی مجازات به گفتار و کردار از پیش و پس من هیچ ناخوب دش نید کست. تو گوستاه شد دست با گنج اوی بپیچت هماناتن از رنج او اگر چه بدایت همین بر هم از راه فرمان اون نگذرم ببین ذات خوب جرات داره ببین با اینکه طالب داری میگین اینجوری اینا ولی من از اون سر چیز نمی کنم حالا کار بدی نکردم بعد از اینا نمی اگر چه بدایت همین بر هم از راه فرمان اون نگذرم بیایم کنون با تو من بی ستا باز اگه کار بار درست شده بود یعنی روح و خبر نهش از این حرفایی که مدکزه دید بیایم کنون با تو من بی سپاه ببینم که از چیست آزارشا به دو گفت کرسی و از این نام توی تو را آمدن نزده او نیست روی نیست روی یعنی وجهی نداره صورتی نداره تو را آمدن نزده او نیست روی به پای در آتش نباید شدن نه پیش بلا داستان ها زدن همی خیره برپد بر شتاب آوری سر بخت خندان به خواب آوری تو را من همانا آنا بسم پای مرد پای مرد یعنی پشتیبان و میانجی و پاردی و اینا میگه من بستم تو را من همانا آنا بسم پای مرد. بر آتش یکی برزنم باد سر میرم آتشش رو یه ذره کاموش یکی پاسخ نامه باید نوشت، پدیدار کردن همه خوزشت. زکین گر ببینم سر اواتهی، درخشان شود روزگار رو یه نام بیس عذری ویار که فرانگیز مثل ناخشه و نه. تا من برم رو ازارره خاموش کنه مثل وضع بهتر شد نهبت مینگم که بیاد. نباید دی. سواری فرستم به نزدیک تو درخ وقت ذکین ببینم سر اواتهی، درخشان شود روزگار بهی. سواری فرستم به نزدیک تو درخشان کنم رای تاریک تو امید هستم از کردگار جهان شناسنده آشکارنهان که از این بازگردد سوی راستی شنا... شود دور از اون کجی و کاستی بگر بینم در سرش هیچ تاب هیونی فرستم هم در شتاب، تو زنسان که باید به سودی بساز مکن کار برده بردراز دیدم اگه وعزم دیدم خرابه فوراً نیفرسم و میگم که تو کار خود تو دراز نکن ندور از تزریدر به هر کشوری به هر نامداری و هر محتری میگه اینجا به جای مختلف دور نیست وزبور برو 120 دارند از ایدر به چین همان سی به ایران زمین تا سلت پرسنگ ظاهرم سد ویست تا, تا چینه؟ سی هم تا ایرانه میتونید بری از این سو همه دوستار تو هند جهان بنده و شهر جهان وگر از این سو همه دوستدار تو و وگر پنده شهریار تواند، وگر یعنی ویا یا رعیت پدرت هند یا خودتو دوست دارند سو پدر آرزومند توست جهان بنده و شهر پیوند توست به هر سو یکی نامه ای کند دراز بسیچیده باشد درنگی مساست میگه نامم بفرست برای اینکه بعد بره بگی بفهم نام نوشته و آماره چیز کرده بود. سیاوش به گفتار او بگروید چنان جان بیدار او بغنبید جوان بود سرنوشتم کار میشود فکرم نمیکرد که این مرد داره رضالت میکنه گفتار او قبول کرد و جان بیدارش قابید یعنی مغزش درست کار نکرد دو گفت از آن در کرانی سخن ز گفتار و رایت نگردم زبون تو خواهشگری کن مرا ذوق بخا بچه خواهش کن چه چیز واسطه شو می منو منو از او بخا یعنی بخا که از گناه نکرده من فکر همه راستی جو یا فرمان را بعد نامی نویس میشه افراسی ها گفتارن در نامه بستن و نزدیک دبیر پجوهنده را پیش خاند سخونهای آگنده را برپشاند نخست آفریننده را یاد کرد زدام خرد جانش آزاد کرد از آن پس زفام خرد فام یعنی وام فام همون وام نخست آفریننده را یاد کرد ز فام خرد جانش آزاد کرد از آن پس خرد را ستایش گرفت ابر شاه دوران نیایش گرفت که ای شاه پرداد و بهروزگار زمان مباداز تو یادگار یعنی چی زمان مباداز تو یادگار؟ یعنی یادشو نمونه زمان مباداز تو یادگار یاد نمونه یعنی زنده بمونی؟ ها روزگار است یادگار نمونه تو خودت باشی نگین که این ملک افراسیاب بودیم یادش به خیل افراسی یعنی زنده باشید زمانه من با تو یادگاه مرا خواستی شاد گشتن بدان که بادا نشست تو با مو بدان و دیگر فریگیس را خواستی به مهر و وفاد دل بیا راستی فریگیس نالنده بود این زمان نالنده و نالان هر دوش یعنی ناخوش فریگیس نالنده بود این زمان به لب ناچران و به تن ناچمان ناچران بود یعنی اشته نداشت به لب با دهن قضا نمی کن به تنم ناچمان بود یعنی خوب راه نمیتونست بره چمیدن بانی به ناز راه رفتن از تو زن خوشگل هم خب به ناز راه میره دیگه به لب ناچران و به تن ناچمان بخفت و مرا پیش بالین بوست بخفت یعنی بستریست بخفت و مرا پیش بالین ببهست میان دو گیتیش بینم نشه. یعنی خطرناک هم هست و مینم که میون این دوتو دنیاست یعنی حال بحرانی داره مرا دل پر از رای و دیدار توست که کشور پر از گنج و کردار توست ز نالندگی چون سبک تر شود فدای تن شاه کشور شود بهانه مران فدای تن شاه کشور شود بهانه مران نیز عزازار از اوست نهانم پر از درد و تیمار اوست نجاست به چون شنامت به مهرند درآمد بداد به زودی به کرسی وذ بدنجاه دلاور سه است به تکاور بخواست ببینید بلا سه اسب تکاور بخواست همین تاخت یک زر شب و روز راست چهارم بیامد به درگاه شاه از بعد زبان روان پرگنا فراوان بپرسیدش افراسیاب چو دیدش پر از رنج و سر پر چرا با ستاب آمدی گفت شاه چگونه سپردی چنین دور را برا گفت چون تیره شد روی کار نشاید شموردن بعد روزگار اینگه وقتی کار پد میشه نوید بگیم که روزگار این کار رو کرد خودمون کردیم سیاوش نکردیش در کس نگاه پذیر نیامد مرا خود به راه سخون نیز نشنید دور نامه نخوان مرا پیش تختش به پایان نشان یعنی رو پای خودم بود سندلی ننشون مرا پیش تختش به پایان نشان از ایران بدون نامه پیوسته بود یعنی مرتب نامه از ایران بهش میرسید به مابر در شهر او بسته بود سپاهیز روم و ز چین همین هر زمان برخ زمین تو بر کار او گرد درنگ آخری مگر بعد از آن پس به چنگ آخری اگر دیر کنی کار از دست رفته اگر دیر گیری تو جنگ آخرد دو کشور به مردی به چنگ آخرد اگر سوی ایران برانت سفا که یارد شدن پیش او کی نفاه تو را کردم آگه دیدار پیش از این پس به پیچی زکردارد تو بشنید افراسیاب این سخن بر او تازه شد روزگار و کهان یعنی روزگاری که ایران و دوران کینه داشتن به کرسیوز از خش پاسخ نداد دلش گشت پر زاتش و سرچپا بفرمود تا بر کشیدند نای امان سنج و شیفور و هندی دارا لشگر قرون آماد از کنگ خندان بهش درختیز کینه به نبی بدام گه که کرسیوز پرپری گران کرد برزین دوال رکیب وقتی که دوال رو گران میکنن و انان رو دوال رکاب رکاب تو صفای سوار میشه دیگه اونا رو میزنه کمپین میکنه میزنه پرست برو دهنش هم حل میکنه بعد یک که رکاب و سواک بکنه و دهنه رو سنگین بکنه یعنی نرو بدان که کرسی و ده پرفروش گران کرد باز این پرفری گران کرد باز دوال دوال این چر رکیب هم که همون رکابه سیاه به پردندر آمد به درد آمد توی شبستان توی خیمن تنش لرزدرزان و رخسار زرد فریگیس گفته گوشیر چنگ چه بودت که دیگر شد از دیب رنگ چرا رنگ برگشته چون این دار تاسخ که خوب روی به توران زمین شد مرا آبروی آبروی من در توران رد به نیمسان که گفتار کرسی وزه است پرگار بهره مرا مرکز است. پرگار دو تا پایه داره یکیش وسط قرار میگیره که تکون نمیکنه از جاش یکی دور میگرده. میگه من مثل اینکه در مرکز یعنی مواصره خلاص کار من تموشه. باریجست بگیرفت گیسو به دست گل و ارغوان را به فندق بخرد. فندق ناخونشون. خانوما از قدیم زنایی که ازار سنی داشتن هنه ها می بستن ناخونشون بلی های شیکتر ناخونشون رو سیاه میکردن با موادی مثل رنگ که به سرشون می و نشادر رو یه دیگه ناخون رو سیاه میکردن و اون وقت ناخن زیبای زن زیبا رو تشبیل میکردن فندوق فندوق سیاه خب دیگه تیرت رنگش دیگه بعد بعد میگه که سرانگوشتان آن ماه نگارین چو زلفانش سیاه و نغز و شیدین توی بیسترام این هاست اینها رو ما گوشه کنار پیدا میکنیم بایده کتابی که ننوشته که پانوها انگوشتانو شجوری درست میکردن یا اون پندف چی چیه نمینا که نیستش که اینها رو باید خوردخور خور دادن مطالعه بکنه از این وران ور ببینه و. <تصفيق> گل و را به فندق بخست یعنی با ناخوناش سر و صورت و لب و گل یعنی گل صورت گفتم ارغوانم که صورت رنگه. گل و ارقوان را به فندق بخست یعنی چنگ زد صورت کند کند مثلا پر از خون شدن بصد مشک بود بسد مرجان مرجانم که میدونی چیه شimdi mesela استان فیش جانور نباتی شکله یعنی حیونه ولی شکل نبات حرکت نداره تای دریا معمولا تو جزایر آتش فشانی این درست میشه و میاد با ما ما شاخه ها پهن میکنه این طرف اون طرف تنش رنگ قرمز داره و اندکبه ها هم هست، گرام قیمت نیست ولی رنگ خوشی داره این است که لب محشوق رو یا صورتش رو به بستد پشمی کنه همی ک... همی مور... پر از خون شدن بستد موش بوی به کفت پر از آب و خون کرد رو. کفتن و کفیدن یعنی پاره کردن این انا رو دیدید که میشکافه، پاره میشه میگن نار کفته این ساره شد پر از خون شدن صد موش بود بکفت و پر از آب و خون کرد روی همین موش بارید بر کوه سین دلالز خوشاب شد بدونی کوه سین بدنش میگه موش بارید یعنی ظلپاشو پراکنده کرد، موشو پراکنده کرد همین موش بارید بر کوهسی، دل ز خوشاب شد بدونی دلالاً چشماش که سرخ شده خوشابه عشق؟ عشق همی کنوی و همی ریخت، آب ز گفتار و کردار افراسیان قافل از این که حفاظی ها بدبخت هم اونجا هیچ روحش از این حرفا خبر ندارید به دو گفت که شاه گردن فراز چه سازی کنون؟ به سیاوش میگه آه. شاه گردن فراز به شوهرش میگه به دو گفت که شاه گردن فراز چه سازی کنون؟ زود بک شاه راز پدر خود دلی داره از تو به در از ایران نیاری سخن یاد کرد نیاری از یار است نیازی از ایران هم نمی‌تونه حرف می‌بزنی چون خیلی دوره از یه‌ها رستن پدر خود دلی دارد از تو به از ایران نه یاری یاد کرد سوی روم ره با درنگ آیده است. پویی سوی چین که ننگ آیده میگه سوی روم هم که نمیری، برای اینکه راهش بولانیه طرف چین هم که نمیری، برای اینکه ننگت میاد با چینی‌ها رابطه داشته باشی. زگیتی کراگیر گیری اکنون پناه پناه خداوند فرشید ما یکی رو در دنیا پناه میگیری خداوند فرشید ما ور پناه میگیری باد بر جان آن ماه و سال کجا برتن تو شود بر سگاه میگه اون سال و ماهی که به تن تو بدندیشی بکنه ستن باد همی گفت کردی و زکنون زرا. همانه آفیه آمده که نزدی خب بعد سیاوش خواب نید گفتم بهتون که سیاوش مقداری هم با ما ورا طبیعت ارتباط داره و یه چیزایی به دلش الهام میشه چهارم شب در بر ماه به خواب اندرون بود با رنگ و بوی یعنی سیاوش بلرزید و از خواب پیره بجست خروشی برا ورد چون پیره مست همی داشت اندر برش خوب چه به دو گفت شاه ها فرنگیش فلوش حاویده بود به دو گفت شاه چه بودت دیمه خروشی دوش هم ای بی افروفتن برش اود و هنبر همی سوکتن بپرسید از اون دفت افراسیاب که فرزان شاه ها چه دیدی به خواب به دو گفت که از خواب من لبت هیچ مک میگهید با کس نگو این خواب رو ولی اینجور دیدم چنان دیدم این سر بسیم این خواب که بودی یکی بیکران رود آب یکی کوه آتش به دیگر کران گرفته لب آب نیزه ز یک سو شدی آتش تیز و گرد برف فروف و بوش ز یک دست آتش ز یک دست آب به پیشندرون تیل و افراسیات به دیدی مرا روی کردی دو جمع دمیدی بران آتش تیز دم که بیشتر بگیره پریگیس گفت این جز از نیکویی نباشد یک امشب نگر بغنوی میگه این خوبه جز نیکویی چیزی نیست سعی کن امشب بخوابی به کت یه طرف آتیش بود یه طرف آب بود درست سیاوشگرد و آتیش گرفته بود و ابراتی‌ها معظمر اومده بود و جلو آب هم گرفته بودن کسی ازش عبور نکنه خلاصو محاصره بود دیگه مثلا شبهه به بکرسی و ضایت همی خوابشون شود کشته بر دست خاقان روم میگه این به اون برمی‌گذره سیاوش سفر آ سراسر به خان به درگاه ایوان زمانی به پیچیده بسیر تیده بنچه از خنجر به چنگ فرستاد در سوی م. کنگ دو بهره چه از تیر شب در گذشت سوار تلایه بیام آمد زده در پشت اون قسمت پیشاهنگ سپاهه که وقتی یه لشکر اینا میخوابن همه دیگه بعد باید یه دستهی باشن که اینا گشت بزنن مواظب به آسایش اینا باشن چیزی باشن دیده بان دیگه دیده اینا پسی جیده بینچه از خنجر به چنگ تلاحیه فرستاد بر سوی کنگ دو بحرت رو از تیری شد در گذشت سوار تلاحیه بیامد ده دشت که افراسیاب و فراوان سپاه پدید آمد از دور تازان راه افراسیاب و سپاه بسیار با سرعت که زنزدیک کرسیوز آمد نوند که بر چاره جان میان را ببند و هم کرد که چون گفته بود که سوار اگه خراب شد بعض میگم که فکش بکنی یه سوارم رسید که فکر خود بود برای چی میگه؟ برای اینکه سیاوهش مسلح بشه باید جلو افراسیات کنیم سه هرچی بگیم من میخواستم میام می استقبال میگم که استقبال اینجوری میگم که بر چاره جان میان را ببند نه آمد گفتار من هیچ سود از آتش ندیدم جز از تیر دور نگر تا چه باید کنون ساختن سپه را کجا باید انداختن سیابوش ندانست بازار او بازار جنی یعنی دروگوی وقبازیش دیگه تبیز بازار گرمیش سیابوش ندانست بازار او همین راست دانست گفتار او پریگیز گفته ای خیرت مند شاه مکن هیچگونه به ما در نگاه ببینید چه زنی میگه ما رو ول کن. مانو، زنده‌گینا رو ول تو خودت دار. فکر می‌کرده که خب من بالاخره دختر افراسیابم. کاری ندارم ندارم. اون تو دار. میگه تو برو تو برو ما رو به صفر کن. فارسی گفته "ای خسرت منم، هیچ خونه به مادر نگاه، یکی باره گامزن برنشین، ما به ایمن ای به توران زنی." تو را زنده باید که مانی به خیش ترخیشی رو کسی را مپای یعنی موازه به کسی نمیخواد میخواد سیاوش به دو گفت کن خواب من به جای آمد و تیره شد آب من مرا زندگانی پیش پیشمینی میکنه مرا زندگانی سر آگه غم قم روز تل خندر آگه تنی چونین از کارس فهر بلند گهی شاد دارد گهی موسمن گر ایوان من سر به کیوان ای ایوان کشید همان زهر گیتی به واقعیت کشید اگر سال گردد هزار و دویست جز از خاک تیره مرا جای میست یکی سینه شیر باشد جا یکی چنگ کرکست بعد گر همای یعنی یکی هم چنگ کرکس مرده میخوره هما مرده میخوره میگه یا یکی کسی سینه شیر جاش میشه یعنی زنده می‌گوشان یه جدید که کرکس و عما میوره یعنی مرده میرم ولی به هر حال کسی نمی‌موت. ز شب روشنایی ندویاد کسی کجا پهره دارد ز دانش فطری. یعنی این افسریا مثل شب بود من بیخورد از این روشنایی طلب می‌کردم. تو را 5 ماه است آبستنی. از این نام بر بچه‌ی روستایی درخت تو گر نر بارآورد. یکی نام بر شهری ها را برد سرفراز کیفست رو کن به قم خوردن او را دلاران کن ز خورشید تاونده تا تیر خاک گذر نیست از داده ی از دان پاک نهالی مرا خاک توران ببرد که گوید که جانم به ایران ببرد نهالی به معنی اون دوشک کچروی بوده که روش مینشستن که بشون مصند هنوز هم در بعضی شهرستونا میگن نالی نالی شاید همدان اونجا هنوز میگن اون دو شکچه کتل رو میگن نهالی اینجا محسوسش اینه که من در خاک توران عبدین میرم جای خوابم نحالی مرا خاک توران باورد که گوید که جانم به ایران باورد چون این گرد این گمبد تیز رو سرای فوهن را نخانند نو از این پس به فرمان افراسیاب مرا تیر در اندر آی به رند بر بیگ و نه بر سرم اینا همه پیش زخون جگر بر نهندف سرم نه تابوت یابم نه گور و کفن نه من بگریند زار انجمن بمانم به سان قریبان به خاک سرم کرده از تن به شمشیر تا به خاری ترا روزبانان شاه روزبانان نه و معمودی بخاری تو را روزبانان شاه سر و تند برندت به راه بیاید صفهدار پیران به در وقتی منو کشتن میگه پیران میرسه بخواهش بخواهد تو را از پیران گفتم دیگنم با کشینش دختر عزیز سوگلی عزیز که هزش را میگه دم با کشینش بیاید صفهدار پیران به در بخواهش بخواهد تو را از پیران به جان بی‌گناه خواهد از زینهار به ایوان خیشت برد زار و خار دیگه تو رو زنهار میخواد و برمی داره میره تو رو به خاری به کاخ خودش به ایوان خیش که یعنی به ایوان خیش تو را برد اون چه معقولیه به ایوان خیشت برد زار و خار از ایران بیاید یکی چارهگر به فرمان دادا بسته کمر از در تو را با پسر دردنهان سوی رود جیهون برد ناگهان گیب گیب پسر گوگرز معمور میشه که کابوس خوابی گویا میبینه حالا خواب میبینه یا نشه من درست یادم نیست گویا خواب میبینه و میگوید سروش بهش که تنها کسی که میتونه که خسرو را از تو بیاره گیب به معمور کن تا بره و او پیدا کنه و بیاره علت اینکه حضور رحمت اصلا فاصله بوده برای که شنیده بوده که رفسزش چوپون بشه بعد میفرسه احساسات این بچه‌ای داره نداره چی شده اینو میگه یه بچه عقب مونده‌ی عوازی داره بود که میشاید چوپون بشه اینا بعدم که میاد دولت احساسی اومدی چی کارو عوازی دست بزنه خلاصه نمیذاره که احساسیا جزنج ببینید گیب میاد یه 7 سال در ایران مون در توران مون کورش، گور و پوشش هم از چرم گور بود قضاش دور بود هر کسی را میدید برای اینکه اگر سراغ فرنگی سینارو میگرف اگر خبر نداشت، میکشتش برای اینکه خبر پخش نشید تا وقتی که سیاوش برداشت برحال همه این رو سیاوش پیش بینی. عزیدر تو را پسر در نهان توی رود جیهون برد ناگهان نشانت برای تخت شاهی برا، به فرمان شود مرگ و ماهی برا از ایران بسی لشکر آید به کین پراسوک گردد سراسر زمین بر این گونه خواهد گذشتن سپه نخواهد شدن رام با من به میر بسا لشکر آ کسبه کین من بپوشند جوشن برای این من تگیتی برای آید سراسر خروش زمانه ز که آید به جوش په رخش روگ زمین بسپرد ز توران کسی را بهکس نشت مرد. بکینم از امروز تاره خیز رست خیز یعنی روز گیانا از امروز تا خیز نبینی جز از گرز و شمگیرتیز فریگی ساکرد تدرودو گفت که من رفتنی گشتم ای نیست این گفت ها بر تو دل سخت کن. تن از ناز و از تخت پردخت کن یعنی خالی کن دل تو از ناز و از تخت خروش مغامی و دل پرز درد برون رفت از ایوان دروخ سا بذارد. حالا اینجا یه قدری خود چیز حرف میزنی جهانا ندانم چرا پروردی چرا پرورده باشی چرا بشکری بشکری یعنی پاره کنی شکار, شکار همینه دیگه شکر. شکریدن یعنی همون شکستن یعنی پاره کردن فریگیس روح کنده و کنده موی آزار، زو دل پر از روی سیا بشت و گفت خروشان به دوینده اندر آبیت جهت روخش خون, خون دلو دیده گشت توی آخر تازیستان گذشت سیا بشت بیاورد رنگ بهزاد را از که در یافتی روز کیند باد را همین اصله که کیخسرو با ییو رو از سوران به ایران میبره خروشان سرش را به برد درگره ازار و فسارش ز سر برگره به گوشندرش گفت رازی دراز که بیدار دل باش و باکس کس مساست چو کیخسرو آید به خواستن انانش ترابای داره از آخر ببرد دل به یک بارگی که او را تو باشی به کین بارگی اینکه بری تو برای اینکه برای کینگاهی اصلی که خصوص را سوال میشه توی دیگر مرکبان را همه که پی پی پاشنو برید که نتونه میگه را برد بر افروخ برسان آتش زنی خود و سرکشان سوی ایران کشید رخ از خون دیده شده نافدی مفراسی ها می‌نصد سیاه وحش کرد تو ایک نیم فرسنگ با پریدرا رسیدن در او دوران سپا سپا دید با تیغ و خود و زره وش بر وشتده برزره برگره به دل گفت کرسی و از این راست کفت چون این راستی را نباید نهو سیاوش بپرسیدش از بیم جان مگر گفته بطاه گذت نهان از همی بنگریدین بدان آن بدین که کینه نبادشان به دل پیش از این سیاوش سواران جنگ گرفتند آرام و حوش و درنگ رده برکشیدند ایرانیان ببستند خون ریختند رامیان همه با سیاوش گرفتند جنگ ندیدند جای پسوس و درنگ کنون خیره گفتند ما رو کشند نباید که برخواد تنها کشند به من تازه ایرانیان دست ببینند و مشمر چه نگاه کرد میگه حالا که ما رو همه را میکشند مثل یه ضربش هستی اینا نشون بدیم همین جوری ما رو دست و خوابسته مثل گفتند نبرم بکشند مثل یه چیزی هم از ما ببینن لشگرش میگه سیاواش چنین گفت این رای نیست همان جنگ،, جنگ را مای و فایی به گوهر بر آن روز ننگ آوریم که پیش خسرو حدی جنگ آوریم خسرو یعنی پدرزن همزمان فراسون میگن ها؟ بله خسرو یعنی پدرزن اینجا به گوهر بر آن روز ننگ آوریم منظور از گوهر چی؟ گوهر نجات میگه مایه ننگ ماستم شده پدرزن شادم جنگ کردی بداریم به گوهر بر آن روز ننگ به گوهر بر آن روز ننگ آوریم که پیش خسرو حدی جنگ آوریم مرا چرخ گردنده گرد بیگناه به دست ودان کرد خواهد تباه به مردی مرا زور آهنگ نیست که با کردگار جهان جنگ نیست چه گفتن خردمند بسیار هوش که با اختر بعد به مردی مکنیست چونین گفت زن پس افراسیاب که ای پر هنر شاه با جا و آف. چرا جنگ جوی آمدی با چرا کشت خواهی مرا بیگناه صفاه دو کشور پر از کین کنیم زمان و زمین پر نفرین کنیم این گفت کرسیواذ کمخرد که از انسان سخن خود کی اندر خورد می میترسه که این گفتاد فراز بشه و در بیاد ازش میگه این چجوری افسادن با چون این گفت کرسیواذ کمخرد که از انسان سخن خود کی اندر خورد گری در چنین بی گناه آمدی چرا با زره نزد شاه ها آمدی کرسیواذ گری در چنین بیگناه آمدی چرا بازدره نزد شاه آمدی پذیر شدن زین نشان راه نیست پذیر شدن استقبال کردن کمان و سفر حدیه شاه نیست چون گفتار کرسی و از افراسی شنید و برآمد بلند آفتا بلشکر بفرمون تا کی به کشند و خروشند چون رزقیز همی گفت یک سر به خنجر دهید دهید یعنی بزنید و بکش ده یعنی بکش چیز تو تاریخ بیهرگی آمده که میشین که دید ابوالحسن عفشین رو دید چیز رو بودالت اجلی تو منزل ابوالحسن ابشین دستش رو پستن لخ روی ند جلادن بالو سرش با کشیده منتظر از تابه گوید، ده، تا بیان بیاندارسی ده یعنی بکشید دهید یعنی بزنگده بکشید آره؟ اش گفت خود، خود گفتش که برای اینکه گفتگو که دراز نشه، گفت چرا به شا، گفت چرا میخواد منو بکشی؟ چرا کینخا خام یه فلان اینا؟ گفت یاد اینکه ارسیوست گفت این چه ترسه حرف می باشه. تا اگه امدید استقبال زره چیه پشتیم؟ فهمیت خب باید چکار کنیم؟ مجالی برای حرف دیگه نبود که یعنی تمام این مطب دیگه مون تو درنش که بگه این فدر سختم آمد اونجا من این سحنه ها رو بازی کردیم اینا میخواست همین بشه دیگه اینا روبرون نشن با هم تا تا وقتی که دیگه قضیه خط میگه همینجا، میگه که وقت تازه سیاهوش که قضیه از چه قراره پذیره شدن نشان راه نیست، کمان و سفر هدیه شاه نیست تو گفتار کسی و از یا آب چنید و برای بلند آفتاب، بلش کرد به فرمون تا تیز کشند خروشند رزخیز، همین گفت یک سر به خنجر دهید بر این کشتی به خون برمهید از ایران سفرم بود، مردی هزار، هم گرفتند گردن در اونشان چه گرد همه کشته گشتند مردان مرد به تیرو به نیزه ببود خسته شاه نگوننده آمد به پشت سیاه سیاه است اونگه همین گشت برخاک نیزه به دست گروی زره دست به او را ببست نمون نهادند برگردنش پاله دو دست از پس پشت بسته چو سنگ دوان خون از آن چهره ارغوان، چنان روز نابیده چشم جوان همی تاختم پیاده کشان چنان روز بانان مردم خوشان برختند سوی سیاوش و پس پشت و پیشش سپه بود چون این گفت سالار خوران سپاه که اندر کشیدش به یک روی راه یعنی ببریدش یک کناری یک طرف راه ببریدش کنیدش به خنجر سر از پن جدا به شخی که هرگز نروید بیا میگه در بیابانی شخ یعنی بیابان بیاب و در بیابانی که هیچ گیاه ازش رویده نمیشه اونجا سرشو ببرید دلیلش این بوده باز حالا میگم دلیلش این بوده که معتقد بودن که اگر خون روی زمین ریخته بشه اولا که این مسائلی که من دارم میگم مال روزگاریست که کشاب بشر شروع کرده به به قول شما ستلدان شدن، مستقر شدن و کشاورزی شروع کردن بعد هر سال یه قربانی میدادن میپشتن کسی رو خونش رو میپشتن تو این تحساب اونوار اینکه این فرکت خیلی بانه و از اون وقت است که معتقد شدن که اگر خون کسی رو بریزن بی گناه اونم بعد یه گیاهی در میاد و این گیاه بعد اصلاف خطنه میشه و چه می اینی که میگه یه جایی ببرید سرش ببرید که هیچ گیاهی در نیاد و بعد در بعض این اسخه هست من نمیدونم این تو هست یا نه در بعض این اسخه هست که یه وقتی که همون جای بیاب و علف بردن و چیز کردن از خون سیاه وش یه گیاهی سر زد که بهش میگن پر سیاه و, و این داروی بسیاری از دردها هست پر سیاه و برای رنگش هم خیر میزه الان برای که شای خون ای برای، تو بعضی این نصفه هست، اینجا شاید نباشه، ولی در هر صورت اینکه میگه ببرید جایی که گیا نباشه، نه این دلیلشی کنیدش به خنجر سر از پن جدا، به شخی که هرگز نروید گیا، بریزید خونش برا میخواد، گرم خاک، ممانید دیر و مدارید باب چون گفت باشا، یک سر سپاه که از اون شهری ها را، چه دانی گنا؟ سپاهیان گفتن او غربانی؟ چرا کشت خواهی کسی را که تا آج بگید بر روزا با تخت آج به هنگام شادی درختی مکار که زهرا ورد بار او روزگاه هنی بود کرسیوز بدنشان به بیهودگی یار مردم کشان که خون سیاوش بریزد به درد که از او داشت در دل به روز نبه. اون روز چون کنف شده بود زه پیران یکی بود کهتر به سال برادر و دورا و فر و برادری داشت پیران نام پیلسم جوان بود، تر از پیران کجا پیلسم بود نام جوان یکی مرد روشن روان چنین گفت نام بر پیلسم که این شاخ را بارد در دست و خم زه دانا شنیدن داستان کرات صد بران نیز هم داستان که آهسته دل کم پشیمان ببرد هم آشفته را درمان ببرد آهسته دل یعنی کس که اهل درنگ و اینها رو تحمل کمتر پشیمان میشه ولی آشفته, آشفته یعنی کس که مغزش گوب کار نمیکنه حوش توش وعنی مرگ اینجا هم آشفته را هوش درمان ببرد شتاق و بدی کار من است. پشیمانی جان تن است سری را که باشی برو پادشاه به تیزی بریدن نبینم روا به بندش هنگار پیلسم میگه به بندش همی تا روزگار بر این بر تو را باشد آموزگار چو باد خیرت بر دلت بر بزد از آن پس برا سر بریدن سزد بفرمایه اکنون تو تیزی مکن که تیزی پشیمانی آرد گون. سری را کجا تاج باشد کلاه نشاید بریده خیلط مهن شاه که شاه و رستمش پروردگار بپیچی به فرجام از این روزگار چو گودرز و گرگین و فرهاد و توس ببندند بر کوه پیل کوس دمنده سپهبد گو پیلتن که است بر چشمه و انجمن فریبرز برز کابوس در شهر که هرگز ندیدش کس در رنده شیر که هرگز ندیدش کس از جنگ سیر بر این کین ببندند یک سر کمر در و دشت گرفتد پر از نیزه بر نه من پایدارم نه مانند من نه گردیزه گردان این انجامن هم که پیران بیاید پگاه دیگه فرستو میاد از او بشنود داختان نیز شاخ میگه که رن نظر او چاپ پرس چاپه پرسه بعد اینو بکشه مگر خود نیازت نیاید بدین مگو سر یکی تا جهان است کین ولی کرسی وز نمیتره به دو گفت کسی وز ای حوش من به گفت جوانان هوا را مبند از جانیان دشت پر کرکس گر از کین به ترسی تو را این بس هست همین بد که کردی تو را خود نبست که خیره همی بشنوی رای کس میگه تا اینجا این همه بدی که کردی چدر خود تو در بردی. هنوز کافی نیست که بازم میخوای نظر این اونو بشنوی یعنی اون دفعه اولا پیران که گفتی دخترتو بده به اینو چیز کنه اینا تو شنیدی بعد پلاو حالا بازم میخوای بشنوی سپردی دوم مار رو خستی سرش بپوشید خواهی به دیبا برشت گریدون که او را به جان زینهار دهی من نباسم اگه میخوایم اینو به جان همان بدیم من دیگه اینجا نمونو گرسید به بیغوله خیزم از بیم جان مگر خود سرایت بزودی زمان در نتیجه کار پیلسامم به جایی نرسید برفتم پیچان دمون رو گروه گروی بر شاه توران پر از رنگ و بو که چندین به خون آقش مفیج که آرام خار آیدن در بسیج به گفتار کرسی وزر رهنمای بی آرای و بردار دشمن زفای زدی دام و دشمن گرفتی به دوی مکش دست و خیره مبر تا به روی سرین است از ایران که داری به دست دل گالان به باید چکرست سپاهی بر این گونه کردی تباه نگر تا چگونه بومد با تو شاه اگر خود نیازاردی تزنخست به آب این گناه را توانست جست کنون آن بهاید که او در جهان نباشد پدید آشکارونه ها بدیشان، به دیشان چون این پاسه خواهد شاه که من ندیدم به دیده گناه چشم خودم گناه ولی که گفت ستار شمر به فرجام از اون سختی آید به بریدون که خونش نریزم به کین یکی گرد ایران زمین به توران گزند مرا آمده است غم و رنج و بند مرا آمده است رها کردنش بدتر از کشتنه اما کشتنش کشتنش دردرنج تنه هست که رتمن با مردم بدکمان نداند کسی چاره آقسون فریگیست بشنید رخ را بخست اخواسی هنوز ناراحته حتی کرسیده تهدید کرده که ای توی نکشی من میذارم میرم هست. ولی بازم خودش چیزی نهی فریگیست بجنید رخ را بخست میان را به زنار خونین ببست پیاده بیامد به نزدیک شاه به خون رنگ داده دروخزار ما به پیش پدر شد پر از درد و باک خروشان به سربر طاکند خاک به دو گفت پر هنر شهریار چرا کرد کاهی مرا خاک دلت را چرا بستیم در فرید همی از بلندی نبینی نشید سر تاجداری مبر بیگنا که نبسن در دا داقر غور و ما سیاه که بگذاشت ایران زمین همی از جهان بر تو کرد آفرین. بیا از بحرت و را افسر و تخت و بنگاه را میگه اونها رو بر تو چیز کرد برکت اومد بیامد آمد کرد پشت و فنا کنون زو چه جویی که بردد زیرا سر تاجداران نبرد کسیی که با تاج بر تخت ماند بسی. مکن بی بر تن من ست ستم که گیتی سپنج است بر باد یکی را به چاه کند بی یکی با کلاه برنشاند بگاه سرانجام هر دو به خاکندرند از اختر به چنگ مقاکندرند به گفتار کرسی و زبت نهان درفشی مکن خیشتند در جهان درفشی درفش یعنی علم یعنی خود تو کن خود تو سرزب مردم ندار شنیدی کجا زافری دون گرد ستم که تازی چه بود؟ همان از من شاه بزرگ چه آمد به تور و به سلم سطور کنون زنده برگاه کابوز شاه چو دست دستان و چون رستم کین خواه جهان از تهمتن بررزت همین که توران به چنگش نیرزد همین چو گودرز که از گرزه او روز جنگ به در ردر شیر و چنگ پلنگ چون بهرام و چون زنگی شاغران که نندیشد از گرزه کندا آوران درختی نشانی همی در زمین کجا برگ خون آورد بارکی به کین سیاه پوشد آب کند روز نفرین برفت را سیاه ستمگاره ای بر تنه بسی یادت آید گفتار من نه در شکاری که برو رفت اگر آهوان را به برو همین شهریاری رو با ایزگاه که نفریم کند برد و تخت و کلا مده شهر توران به خیره بباد نباید روز بد آید یاد نباید یعنی مباده به گفتین رو روی سیاه بدید دروف را بکند و فقان برکشید دل شاه توران بر او برد بسود همین خیره چشم را بدو. بدود گفت برگرد و ای در نفع. چه دانی که از این بد مرافیست را به کاخ بلندش یکی خانه بود قریبیست از آن خانه بیگانه بود اتاق خانه نیکن بدان تیرگیشن در انداختن در خانه را بند برساختن کردنشت اتاق حدش کرد. نگه کرد کرسی وقت یعنی سه روز یا روز. یعنی ما خیلی مشکل بود دوم دو هم سه بان هست که میگه بندی بوده که مسیحی و کمربندشون بستن به نشخون مسیح گلی. چرا میگه که سفرش شم... شما سفرش همستان گفتن که آقابت این کار خوب نیست همچنین چرا؟ چرا؟ وقتی میخواد پیران میاد یه دوستر رو به شنا میگه بچه شیرنه رو نباید پرورش داره پرداشتی من از موبدان شنیدم بعد پیران گفته اینا به گفتار اینا تواجمه چرا؟ نزد نبود. ولی راجل سیاوش گفته داره. آره؟ از دست سیاوش اصلاً نذاشتیم که از این این کار موجب بشه تو نگاه کرد ترسی و در گروی گروه ستمجر پفشید. رو بیا مدت تو پیش سیاوش رسید جوان مردی و فوت فت ناپدی. به زاد دست اون موی شاهان گرفت. بخاری کشیدش به روی شگه. با صورت سیاباش بنالید با کردگار که ای برتر از جای از روزگار یکی شاخ پیدا کن از تخم من چه خورشید تابنده بر انجمن که خواهد از این دشمنان کین من کند تازه در کشور آین من همین شد پس پشت او پیل سم دو دیده پر از خون و دل پرزه کن به دو گفت پدروت باش زمین تار و تو جافدان پوت باش دروگی من سوی پیران رسان بگویشت گیتی دگر شد بسان به پیران نزین دونه بودم امید همه پند او باد و من شاخ بید مرا گفته بود او که با صد هزار زرهدار و برگستوان سوار چو برگرداد از روز یار بهگاه چرا مرزار تو کنون پیش کرسی در دوان پیاده چون این خار و تیر روان نبینم همی یار با من کسی که بخروش ادیزار بر من بسید اینا رو گفت چون از لشکر و شهر اندر گذشت کشانش ببردند هر دو به دشت سه کرسی وزم خنجر آفکون گروی زره بستد از بحر خون پیاده همی برد مویش کشان چون آمد بدان جایگاه نشان بیفکن پیل جیان را بخواد نه شرم آمدش رو و نه باغ یکی تشت زرین نهاد از برش جدا کرد از آن سر سیمین سرش به جایی که به فرموده بود تشت خون گروی زره برد و کردش نگون یکی باد با تیر سیاه برآمد بپوشید بفوشید پرشید و ما کسی یکدیگر را ندیدند روی گرفتند نفرین همه بر برگروی در دو مورد این چیزا رو می گفتن. یکی وقتی که جادوگران و موجودات اهریمنی خوشته می شودن می که رد و برد میشه و باد میاد و توفا نیست و اینا یکی هم کسانی که بیگناه خوشته می شودن یا کسانی که جنبه الهی داشتن یکی اینجور چا از سربون دور گشت آفتاب سر شهری در آمد به خواب چه خوابی که چندین زمان برگذشت نجنگی بید دیدار هرگز نگه. از شد تخت شاهی توهی ما با بادا مستر بستلید ما یعنی همون نم چپ و راست هر سو به تاپم همین سروپایی تی همین یکی بد کند نیک بیشایدش جهان بنده و بخت خیشایدش یکی جز به نیکی زمین نس پرد. همی همین از نجندی پروفش مرد مداری بیمار با جان به هم بگیتی مکن جان دل را توشم یکی دان از او هرچه آید همین که جاوید با تو نفا همین سخان سیاوش بر آمد خروش اینجا حتی چیزم نمیگه شاید جای دیگه میگه یه جایی هست که میگه ریشش رو گرفت سرش رو بلند کرد و مثل گوسفند سرش رو شاید بعد تو سحنهایی دیگه میگه این هست از آخر بیاورد پس پهلوان، دهست سوار آزمود جوان، خود و گرد و فرشید ورد، براورد از آن راه ناگاه گرد چند آره. آره. از نجندی... نجندی. نجندی یعنی, نجندی یعنی و دلتنگی لغتا رو به طور کلی به, به آرش تنها نمیگم. به همه میگم. لغت رو از من نپرسین. لغت فرهنگ رام زن در نمیاد. اون مسئله نیست که آدم لازم باشه که از معلمم بپرسه این یعنی چی؟ این فرهنگ یا حالا معنی باشه میگم ولی بعضی اش هم نمیدونم یا خودم از فرهنگ نیاکنم. یعنی همین کاری که شما میگم. لغتا رو همرو تو فرهنگ نیاکنین حالا که چهل تمام شده ما هی گفتیم درستون رو بخونین، درستون بخونین یعنی همین رو نمیخونین. و بعد یادتون باشه اینا رو باید نگاه کنین لغت ها شاید در بیارین یه دور ببینین هرچی هست فرهنگ فرهنگر بیارین و یه خود خودتون کاری یادتون که من بگم خب من میگم من حرفی ندارم فلد هستم ازتوان که نمیخوام بده ولی شما ها باید تردیب و این این زخان سیاوش چیه بگو؟ شما باید این خب ده خان سیاوش بر آمد خروش خان یعنی همون خانه سخان خان سیاوش بر آمد خروش جهان ز کرسی و آمد به جوش همه بندگان موو کردند باز فریجیست مشکین کمند دراز برید و میان را به گیسو به وسیله این علامت عزاداری اون یه بلند چوپرید بس کمرش به فندق گل و ارغوان را بخند سر ماهرویان گسسته کمر خراشیده یعنی موهاشون همه زدن اتاکه. خراشیده روی یا بمونده نجم بله کنیز و که اون چه بودن دیگه حکی میده به آواز بر جان افراسیاب به نفرید با نرگس و گل پراب به آواز بر جان افراسیاب به نفرید کی؟ فریدیست یعنی با صدای بلند نفرین کرد و افاسی ها گلش هم پراب بود یعنی چشماش پراب خروشش به گوش سفه رسید چون ناله زار و نفرین چنید به گرسیوز بدنهان چاکف که این را به توی آورید از نهو گفت بیریدش بیرون پرده به درگه وریدش کشان برای روزوانان و مردان کشان بدان تا بگیرن موی سرش بدرن بر تنمه چادرش زنندش همین چوب تا تخم کین بری زد بر این بوم از ایران زمین اینقدر بزنند تا بچه شمین بسید نه بیخ زبیخ سیاه نشاخون نه شاخ نه برگ و نه, و نه, و نه همه نامداران آن انجمن گرفتن نفرین بر اون تن به تند. که از شاه و دستور و از لشگری از آن اونه نشنید که از داوری. بی آمد پر از خون دروح فیلسم روان پرز داق و پرز نم به نزدیک لوحاک و فرشید ورد اینا پهلوانان ایران بی آمد ها همه یافت کرد که زخم و از تخت افراسی ها نشاهایت بر این کشور آرام خواب. به تازیم و نزدیک پیران شدیم به تیمار و درد از ایران شدیم سه به گران ماهی کردم زین همی بر نوشتن روی زمین رفتن چه پیران, به پیران هر سه سوار فرزخون دیدگان فرزخار بر او فرش شمردند یک سر سخون که بخت از بدیها چفکند بان یکی زارهی رفت کن در جهان نبیند کس از محترام جهان سیاوه را دست بسته چو زنگ فکنده به گردنش در پاله به دشتش کشیدن پر آبروی روی شد پیاده به پیشش گروی تن پیلوارش بران خاک گرم، فکندند و شستند، رخ راز شرم، یکی تشت به پیشش گرون، بپیچید چون گوسفندانش روی، بریدان سر تاجدار، ستن، فکندش تو سر به صحی همه شاستان ناله و زاری و ناله گشت به درون آب چون جاله گرد، چوپان چوپان بیدین قلو همانا نبرد دانسان گلوی، میگه چوپان ها اینجور جلو گسان نمیار چون سریسان میگهن این جووری بالا پووزشی میگیرن گردنی صاب پای سه بعد می, ای می چوب ایران به گفته بن ها گوش و تختنده افتاد و زور رفت گوش همان جا ها بدتننش کرد چاپ همین کم همین میری خو به دو رو این که بهش تا زود که دردی بر این در خواهد بزرگ سریگیست را نیز خواهد خوشت مکن هیچ بنه بر این کار به درگاه بردن مویش کشان برای روزوانان و مردم کشون. تيران کار مهمی که میکنه همینه که دون فرنگیس و با رو نجات میده. سیاوشش گرفت. خب دیگه این باباش بمونه برای اینکه به هر حال اون نمیشه مینویسه. از مادر زاده بشه و چه بشه کیخسرو رو ببرید شهر راست یا پتر چیزش کنه میمونه یه بالاخره دو هزار سی ساعت بکره. دیگه سپیگه دیگه ما با آرشت فرطیش میگیم. تیپا زمانش. درزه که دره من هم <تصحیح> اینا <تصحیح>